به نام خدای یگانی مهربان سلام افسانه ها سرشار از سخنانی پر از حکمت و دانشند که در قالبی ساده شیرین و جذاب بیان می افسانه‌ها به ما این امکان رو میدن که بر توسن خیال از عالم امکان گامی فراتر بذاریم و اونچو که دست نیافتنیه و دور میبینیم بیابیم و لمس کنیم. در این لحظه قصد داریم افسانه ماهیگیر و زنش رو براتون نقل کنیم. برگرفته از کتاب افسانه‌های خیال انگیز به قلم برادران گریم با ترجمه از آقای محمد شمس. در روزگاران قدیم ماهیگیری با همسرش در کلبه کوچیک و محقر زندگی میکرد اون هر روز برای گرفتن ماهی به کنار ساحل می رفت. همون جمعیش هست و گلابش رو به آب مینداخت و مدت ها همینطور به انباچ خیره می شد. یه روز صبح ماهیگیر افثانه ما وقتی گلاب رو بالا کشید دید که یه ماهی بزرگ و زیبا به قلابش افتاده. ماهیگیر با خوشحالی گلاب رو بالا کشید. ماهی به زبون اومد و گفت ای ماهیگیر، از تو خواهش میکنم منو آزاد کن من ماهی واقعی نیستم مرد با تعجب پرسید یعنی چی؟ تو اگه ماهی واقعی نیستی پس چی هستی؟ ماهی گفت من, من شاهزاده ایم که تلس شدم منو دوباره با آب بندازو بذار از اینجا برم خواهش میکنم خواهش میکنم مرد گفت لازم نیست اینقدر خواهش کنی به نظر من وقتی ماهی بتونه حرف بزنه بهتره که آزاد باشه و به هر جایی که دوست داره بره به بعد ماهی رو به آب انداخت. ماهی با خوشحالی گفت تو تو واقعا ماهیگیر خوب و مهربونی هستی من, من هیچ وقت این لطفت رو فراموش نمی کنم. متشکرم متشکرم به بعد در حالی که رگهٔ باریکی از خون خودش رو روی آب برجان میزاشت از اونجا دور شد مرد ماهیگیر هم قلابش رو برداشت و به کلبش برگشت دستخالی به خونش رسی. زن به دستایی خالی شوهرش نگاه کرد و گفت <تصفح> بازم دست خالی؟ من دیگه خسته شدم از این زندگی مرد لاقل. یک کمی بیشتر میموندی شاید به اندازه شام امشبمون ماهی سید میکردی بعد غرولون کنان گفت اصلا، اصلا تو توی این روزا خیلی بیهوسل و تنبل شدی حتی نمیتونی یه ماهی کوچیکم سعید کنی مرد گفت اگه بگم امروز یه ماهی بزرگ گرفتم دست از سرم برمیداری زن زن با تجرب گفت ماهی بزرگ پس کو کجاست مرد گفت توی دریا زن با تجرب پرسید توی دریا مرد گفت اون اون ماهی یه ماهی معمولی نبود و من گفت که شاهزادهیه که تلز شده من اونو دوباره انداختم تو آب زن با شنیدن این حرف کمی سکوت کرد و از مرد پرسید تو تو چیزی از اون نخواستی خواهشی درخواستی آرزوی؟ چیزی مرد با سردی گفت نه هیچ چه درخواستی میخواستم ازش بکنم؟ زن گفت چه درخواستی؟ آخه مرد عقلت کجا رفته؟ تو میتونستی لاغل از اون یه خونه بخوای؟ یا... اصلا پاشو پاشو همین الان آره همین الان برو اونو پیدا کن و بهش بگو ما یه خونه بزرگ و خوب میخواییم مرد گفت این چه درخواستیه زن؟ آخه چجوری میتونم اونو پیدا کنم ها؟ چجوری؟ زن گفت خب معلومه باید اونو دوباره به گلاب بندازی و قبل از اون که راها کنی ازش بخوایی تا آر زود رو برآورده کنه زود باش را دیر نشده زود باش مرد ماهی گیر با اون که زیاد راضی به این کار نبود راه افتاد و رفت سراغ ماهی بزرگ به رنگ سبز و زرد بود و آرون تر از همیشه به نظر می رسید مرد ماهیگیر افسانه ما با صدای بلند گفت ای ماهی بزرگ ای سلطان ماهی ها! در این موقع ماهی بزرگ سرش را از آب بیرون آورد و پرسید ای ماهیگیر مهربون از من چی می مرد ماهیگیر گفت ای ماهی بزرگ و زیبا منو ببخش منو ببخش زنم زنم به من گفته که هر طوری شده تو رو سید کنم و تا آرزوش رو براورده نکردی آزادت نکنم ماهی بزرگ پرسید خب زن چه آرزویی داره مرد جواب داد اون اون آرزوی داشتن یه خونه بزرگ و زیبا رو داره اه... تو تو میتونی آرزوی اونو برآورده کنی ماهی بزرگ گفت به خونت برگرد خواسته اون رو برآورده میکنم مرد با خوشحالی از ماهی بزرگ خداحافظی کرد و به طرف خونش بهرا یه وقتی به کلبش رسید با تعجب دید که کلبه محقرش به خونه بزرگ و باشکوه تبدیل شده و زنش هم بیرون روی نیمکتی نشسته و داره چیزی می‌بافه زن با دیدن شوهرش با خوشحالی گفت بیا بیا تو ببین چقدر خونه اون قشنگ و زیبا شده بیا تو مرد به همراه زنش وارد خونش شد داخل خونه یه اتاق پذیرایی زیبا وجود داشت با یه بخاری خوب و بزرگ و اتاق خواب که تخت بزرگی در اون قرار داشت. خونه یه انباری و یه آشپسخونه هم داشت که لوازم و ظرفاش از بهترین نوع بودن. دیگه های مسی و بشخاب چینی گلدار خلاصه همه چیز بسیار تمیز و مرتب بود. پشت خونه حیات بزرگی بود با یه مرداری پر از مرغ و خروس و جوجه و یه باقی کوچیک و سرسبز پر از درختهای میوه زن گفت میبینی خونمون چقدر قشنگ و زیباست دیگه از اون کلبه یه و تنگ راحت شدی. مرد سری تکونداد و گفت بله البته به شرطی که آرزوی دیگه ای نداشته باشی زن شونههاشو بالا انداخت و گفت بعدا در این اینباره فکر میکنیم حالا بهتره بریم و یک غذای درست و حسابی بخوریم که دارم از گرستگی ضعف میکنم بعد هم هر دو خوشحال به طرف آشپزخونه رفتند تا به قول خودشون یک غذای درست و حسابی بخورند دتی گذشت تا اینکه زن مرد ماهیگیر گفت مرد این خونه برای من بیش از اندازه تنگ و کوچیکه حیات و باغشم کوچیکه بهتره بری و از ماهی بزرگ بخوای خونه بزرگتری به ما بده اصلا میدونی چیه من دوست دارم قصر داشته باشم یه قصر بزرگ و مرمری مرد گفت زن رو خدا بس کن آخه قصر مرمری میخوایی چیکار مگه ما چند نفریم که این خونه بزرگ برمون تنگ و کوچیکه ها زن گفت مرد چرا متوجه نیستی وقتی ما میتونیم یه قصر مرمری داشته باشیم خب این هماغتی که نخوایم قصر مرمری داشته باشیم مرد گفت این حماقت نیستن زیاد خواهی و بلند پروازیه زن با گفت من این حرفو توی گوشم نمیره همین الان باید بری سراغ ماهی بزرگ و از اون یک قصر مرمری بخوای. اگه این کار رو نکنی دیگه یه لحظه توی این خونه تنگوی گوچیک نمیمونم مرد گفت ولی من فکر نمیکنم ماهی بزرگ دوباره آرزوی ما رو کنه اون یه بار این کارو انجام داده میترسم میترسم می ترسم, می ترسم عصبانی بشه زن گفت نه ترس نه. اون این کارو رو راحتی انجام میده میتونی امتحان کنی مرد ماهی گیر هرچند از دست خواسته های نابجای زنش ناراحت و خسته شده بود ولی از روی ناچاری به طرف دریا برا افتاد رفت و رفت تا به دریا رسید ولی با کمال تعجب دید که دریا گلالوت شده و به رنگ آبی تیره در مده و از رنگ سبزون خبری نیست مرد جلو رفت و با صدای بلند گفت ای ماهی بزرگ ای سلطان ماهی ها چه زودتر نزد من بیا که همسرم ایزابل یک قصر مرمری میخواد در این موقع ماهی بزرگ سر از آب بیرون آورد و گفت دیگه چی میخوای ای ماهی گیر مهرمون مرد ماهیگیر که کمی ترسیده بود گفت منو ببخش منو ببخش مجبور شدم دوباره بیام سراغت آخه ماهی بزرگ گفت حتما باز هم زنت آرزویی داره نه؟ مرد با شرمندگی جواب داد درسته درسته اون اون ماهی بزرگ گفت بگو اون چی میخواد؟ مرد جواب داد اون قصر مرمری میخواد یه قصر مرمری بزرگ ماهی بزرگ گفت به خونت برگرد تا اون قصر مرمری رو ببینی مرد ماهیگیر با خوشحالی از ماهی بزرگ تشکر کرد و به طرف خونش برافت. مرد ماهی گیر به خونش که رسید دید قصر زیبا و با شکوهی جای خونه قبلیش رو گرفته. زنش از بالای پلهها اون رو صدا زد که بیا بیا من اینجام بیا. اون وقت با همراه افتادن تا همه جای قصر رو ببینه. وسط قصر یه تالار بزرگ قرار داشت با میزهای مرمرین و تعداد بیشماری خدمتکار و پیش خدمت که اونا رو از میون درهای بزرگ دولنگه به اتاقهای قصر راهنمایی نمایی تمام اتاقها پر از پرده و قالیچه های و نفیس و نگار میز و سندلی های تلایی بود. ظرف های بلورین و تابلوهای زیبا همه جا دیده حیات خیلی بزرگی وجود داشت با اسب و کالسکه های زیادی خلاصه باغ و درخت و گل حوز های زیبا و آوو و گوزن و گاو وحشی و خیلی چیزایی دیگه در گوش و کنار قصر به چشم خوردن زن گفت میبینی مرد چقدر قشنگ و زیباست میبینی این قصر مرمر فقط یه چیز کم داره مرد بتوندی گفت. تو رو به خدا بس کن که از این بیشتر چی میخوای؟ اینجا چیزی کم نداره زن در حالی که دست به کمر زده بود با قرور گفت چرا؟ چرا؟ چرا؟ یه چیزی کم داره مرد با تحجیب پرسید چه چیزی زن؟ زن گفت این قصر باشکو یه ملکه کم داره که اونم من باید باشم ملکه ایزابل من باید ملکه تمام این سرزمین باشم یه ملکه واقعی مرد پوست هندی زده گفت، ملکه؟ ولی من اصلا دوست ندارم پادشا بشم. زن گفت، این به خودت مربوطه ولی من دوست دارم ملکه باشم. مرد گفت، این کار شدنی نیست، بهتره بهش فکر نکنی زن گفت، ولی با بودن ماهی بزرگ شدنیه. یالا یالا زود باش من باید ملکه بشم، همین که گفتم. مرد هرچی گفت و گفت و گفت هیچ ای نداشت که نداشت و زن همچنان اصرار داشت که باید ملکه اون سرزمین میشه و آشفتگی از قصر خارج شد و خودش رو به دریا رسوند. آب دریا کاملا سیاه رنگ شده بود و موج داشت و بوی بدی میداد. مرد با صدای بلند گفت: ای ماهی بزرگ، ای سلطان ماهی ها هر چه به نزد من بیا که زن من ایزابل یه چیز دیگه میخواد از شما. ای ماهی بزرگ، ای سلطان ماهی ها در این موقع ماهی بزرگ سر از آب بیرون آورد و گفت ای مرد ماهیگیر مهربون این بار هم سر چه آرزویی داره مرد با بناراتی گفت اون اون میخواد ملکه بشه ملکه واقعی ماهی خندید و گفت ملکه واقعی؟ به خونت برگرد اون همین حالا ملکه شده مرد با تعجب پرسید، واقعا، اون، اون، الان ملکه است ماهی بزرگ گفت، البته ملکه تمامی این سرزمین. مرد با خوشحالی از ماهی بزرگ خداحافظی و تشکر کرد و به طرف خونش راه افتاد. وقتی به خونش رسید، قصر بسیار بزرگی دید با برچها و باروهایی که سر به آسمون کشیده بودند. در کنار دروازه قصر، یک جارچی با تبل و شیپور و عدهای زیادی سرباز ایستاده بودند. ماییر وارد قصر شد. تمام در و دیوار قصر از مرغوبترین سنگهای مرمر و طلا ساخته شده بود و پردههای مجلل اون حاشیه دوزی طلایی داشتند. در انتهای سالون بزرگ قص زنش همچون ملکهای واقعی با تاجی از طلا و الماس بر سر و لباس زیبا و خیره کننده به انتظارش ایستاده بود در کنارش شش پیک سلطنتی در یک ردیف ایستاده بودند مرد ماهیگیر به زنش نزدیک شد و گفت میبینم که به آرزوت رسیدی و ملکه شدی ملکه این سرزمین امیدوارم آرزوی دیگه ای نداشته باشید زن شونه هاشو بالا این و آروم گفت این بعدن معلوم میشه فعلاً خیلی خستم میخوام کمی استراحت کنم تو هم بهتره همین کار رو بکنی بعد در حالی که خدمتکاران و پیش خدمتها اونها رو بدرقه میکردن به استراحتگاه رفتن تا کمی استراحت کنم شد زن از این فکر که بعدن چی میخواد بشه و چه آرزوهایی باید داشته باشه خوابش نبود صبح خیلی زود از جاش بلند شد از پنجره به بیرون نگاه کرد و خورشید رو که طولون دید و با خودش فکر کرد من باید ملکه تمام دنیا باشد ملکه این سرزمین کوچیک برای من کافی نیست من باید ملکی تمام جهان بشه. و بعد فوراً شوهرش رو از خواب بیدار کرد و گفت: پاشو پاشو پاشو پاشو من باید ملکه تمام دنیا بشم. مرد چون وحشت زده شده بود که از تخت به پایین افتاد اما زن بدون توجه یک میگفت: من من آرزو دارم ملکه تمام دنیا بشم. زود باش به سراغ ماهی بزرگ برو و از اون بخوام من ملکی تمام دنیا بشم. مرد این بار هم با ناراحتی و از سر ناچاری به طرف دریا را افتاد وقتی که به دریا رسید طوفان و ناکی در جریان بود و غایقها و کشتیها به همه طرف پرتاب می شدن به طوری که مرد مایی گیر ما حتی صدای خودش را هم شنید. با این همه فریاد زد و گفت ای ماهی بزرگ ای سلطان ماهی ها هرچه سریع تر نزد من بیا همسر هم ملک ایزابل چیز دیگه ای میخواد از شما ماهی بزرگ که دیگه از دست زیاده خواهی زن مرد ماهیگیر خسته شده بود با ناراحتی برسید ای مرد بیچاره این بار برای برآورده شدن چه آرزویی اومدی ها؟ مرد ماهیگیر جواب داد همسر متوقع من میخواد ملکی جهان بشه ماهی بزرگ پاسخ داد به خونت برگرد برگرد خونت اون دوباره در همون کلبه کوچیک و محقر سابقش در انتظار توه این بهترین کاریه که میشه در یه آدم زیاد خواه و متوقع به انجام داد برو برو و به این ترتیب ماهیگیر و امسرشت و پایان عمر در همون گلوه کوچیک و محقرشون زندگی کرد. شنیدید افسانه ماهیگیر و زنش بود برگرفته از کتاب افسانه‌های خیال انگیز به قلم برادران گریم با ترجمه از محمد شمس مکسیم گورکی نویسنده معروف روسی درباره سازندگی افسانه‌ها میگه قدرت تخیل افثان سازان چند صد سال قبل از اختراع هواپیما از قالیچهٔ پرنده خبر داشت و خیلی قبلتر از اختراع لوکوموتیو و موتورهای گازی و الکتریکی هم از سرعتی معجزه برای حرکت در فضا مطلع بود افسان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت سالفور ویراستار الهام اشجب اجرا مهران دوستی صداوردار محسن فراهانی تعیه کننده زهرا عبدالله زاده تا افسانهی دیگر بدرود